به نام خدای یگانه مهربان سلام افسانه ها و قصه های ی هر کشور ده. نشونه دهنده وسع زندگی گذشته مردم اون کشوره علت پیشرفت و عقب و تا تاریخ گم هر کشوری رو میشه در قصه ها و افسانه های اون کشور جس کرد افسانی از مردمان آسیای میانه براتون نقل میکنم کنم به نام افسانه پیرزن تاراخ برگرفته از کتاب افسانه های مردم دنیا با ترجمه از فتو دیدوان امیدواریم از شنیدن این افسانی زیبا لذت ببریم. روزی روزگاری در دهکدهی دور افتاده در آسیای میانه پیر مرد و پیر زن فقیر در نزدیکی رودخانه‌ای زندگی میکردن اونا دو دختر داشتن دختر بزرگ لگا و دختر کوچیکتر دیبوف نام داشت دخترها کارای سخت و خودشون انجام می‌دادن چون دلشون برای پدر پیرشون میسوخت روزی پدر برای لگا دختر بزرگتر تیر و کمون خوبی درست کرد لاگا برای شکار به جنگل میرفت و روز بعد هم برای گیبو دختر کوچیکش تور ماهیگیری مکمی بافت تا از رودخانه آمور ماهی بگیره اونا زندگی خوب و آرومی داشتند اینکه بعد از چند سال پیر مرد و پیرزن هر دو از دنیا رفتن و دو دختر یعنی لگا و دیبو تنهای تنها شدند. لگا تیرانداز خیلی خوبی شده بود اون حیوانات جنگل رو شکار میکرد و گوشت و پوست اونها رو به خونه می برد دیبو هم توی خونه می هیزم جمع می کرد غذا می و از پوست حیوانات لباس می دیبو خواهر کوچکتر توی خونه نشسته بود و خیاتی میکرد خواهرش لگا برای شکار به جنگل رفته بود دیبو در تنهایی کار میکرد و آواز میخوند آوازهای قشنگی که از مادرش یاد گرفته بود دیبو همینطور که مشغول کار کردن و آواز خوندن بود یه دفعه صداگ بلند قدمهایی به گوشش خورد کار؟ کسی به اون نزدیک میشد. راه رفتنش صدای تراق تروق عجیبی میداد. دیبو با ترس از سوراخ کلید بیرون نگاه کرد و دید بله پشت در یه نفر ایستاده بود. یه پیرزن لاغر لاغر درست مثل نی. پاهاش مثل دوتا چوب بودن و سر شبیه پرنده ها. حتی بینی اون به منگار شباهت داشت انگشاش کشیده و درست مثل پنجه پرنده ها بود اون با هر حرکتی تراق تروخ میکرد پاهاشو تکون میداد تراق دستشو بلند میکرد تروق سرشو بر برمیگردوند تراق سرشو خم میکرد تروق خلاصه پیرزن تراق تروقی عجیب و غریبی بود دیبو از دیدن این پیرزن به حراس و وحشت افتاد. با خودش گفت اه اه اه خدای من این،, این تکه چه موجودیه؟ پیرزن از پشت در پرسید آهای اه کسی خونه نیست؟ دیبو از ترس جوابی نداد. پیرزن دوباره پرسید اهوی گفتم کسی خوده نیست زود باش در باز کن دیو لحظه ای مکس کرد و چون میترسید اگه در رو باز نکنه واز از این بدتر بشه در رو به روی پیرزن عجیب و غریب و تراختروبی باز کرد دیبو در رو به روی پیرزن تروقی باز کرد پیرزن پرسید <ممم> تو توی این خونه تده هایی؟ دیبو جواب داد بله بله الان تنهام ولی با خوهرم لغا زندگی میکنم پیرزن پرسید اون الان کجاست؟ اونو اینجا نمیبینم دیبو گفت اون به شکار رفته شکارچهی خیلی خوبیه پیرزن نگاهی به اطراف خونه انداخت و گفت من خیلی خستم از راه دوری اومدم باید یکم اینجا استراحت کنم و بعد برای خودش جایی نزدیک بخاری انتخاب کرد و نشست اون پاشو که مثل چنگال پرنده ها بود و خیلی هم لاغر روی هم انداخت و به طرف آتیش دراز کشید وقتی حسابی گرم شد پرسید م... تو دختر زیبا و گشنگی هستی. بعد تاروخ تروغی کرد و به دیپو نزدیک شد و گفت اا... شگی سوان بلند و زیبایی داری دیبو از نزدیک شدن پیرزن به خودش ترسیده بود ولی چیزی نشون نداد و آروم کمی خودش خودشو کنار کشید پیرزن گفت دختر جان بذار من معاتشون بکنم و اونا رو برات ببافم حتما اینجوری بیشتر بهت میاد دیبو نمیخواست قبول کنه سرش کنار کشید اما پیرزن سر اونو در بغل گرفت و شونه زد بعد با انگشتان چنگال مانندش موهای اونو بافت چند لحظه بعد سوزنی در آورد و دور از چشم دختر اونو آهسته توی گردنش فرو برد دیو کشش و به خواب امیری فرو رفت پیرزن از جیب چاغوی در آورد و گیسوان بافتی اونو برید موها رو توی کیسش گذاشت و به سرعت از کلب خارج وقتی لاقا خواهر بزرگتر از شکار برگشت از دور چشمش به کلبه افتاد با خودش گفت اه چه اتفاقی افتاده چرا اچاق روشن نیست چرا از دودکش دودی بلند نمیشه و بعد با تعجب گفت ما که به کافی هیزون برای روشن کردن آتیش داشتیم یعنی یعنی چه اتفاقی برای دیبو افتاده به بعد قدمهاش رو تندتر کرد و به نزدیک کلبه که رسید رد پای قریبه ای رو دید. با نگرانی وارد کلبه شد. خواهرش دیبو با چشمای بسته روی زمین دراز کشیده بود. لگا با دیدن خواهرش فریاد زد دیبو خدای من چی منویدی سر اومده؟ لگا دید که موهای خواهرش رو بریدن نمیتونست اون مرده یا به خواب عمیقی فرو رفته گری کنن گفت <تصفيق> چه کسی این کار رو کرده من, من هرگز اون رو نمیبخشم هر جا باشه پیداش میکنم از روی رد پاش گیرش میارم و بعد تیر و کمون و خنجرش رو برداشت روی سورت نشست رد پارو دنبال کرد رفت و رفت و رفت که کلهی در وسط جنگل رسید لاگا پشت در کل به وسط جنگلی استاد کمی فکر کرد و بعد آروم در زد دختر رنگ ای در رو به روی اون باز کرد لگا گفت سلام من میتونم امشب اینجا بمونم راه زیادی اومدم و نیاز به استراحت دارم دختر با صدای آهسته جواب داد نه متاسفم. این کار امکان پذیر نیست لاگا پرسید فقط همین یه شب قول میدم فردا صبح زود از اینجا برم دختر رنگ پریده گفت نه من اجازه این کار رو ندارم اینجا خونه پیرزنی زنی بدجنسه من برای اون کار میکنم برای همین هم تابال زنده موندم لگا با تحجب پرسید پیرزن زن؟ دختر رنگ گفت بله یه پیرزن بینی منگاری اون اون از دخترای جوون متنفره و با بریدن گیسوان اونها نیروشون میگیره و با این نیرو عمرش رو طولانی تر میکنه تو هم تو هم پیرزن نایمته بهتره زود از اینجا بری لگا بیاد گیسوان بریده خواهرش دیبو افتاد و با عصبانیت گفت من؟ من از هیچ کس نمی پرسم حالا فهمیدم چه کسی موهای خواهرم رو بریده من باید این پیرزن و بجنس ببینم دختر رنگ پریده گفت نه نه نه نه نه این کار خطرناکیه اون از تمام دخترای جوون متنفره سود باش سوت باش از اینجا برو لگا با قاطعیت گفت نه من هیچ نمیرم حالا از تو میخوام به کمک کنی تا این پیرزن بعد شکست بدم و دوباره خواهرمو رو زنده کنم. و بعد با بغز اضافه کرد. <تصفيق> خواهر چهره من دیبوی عزیزم. دختر را این پریده گفت. شکست دادن اون کار آسونی نیست. ولی امیدوارم موفق بشی. لگا گفت. با کمک و راهنمایی تو حتما موفق میشم خب، حالا باید چیکار کنم دختر پریده گفت نیروی شرارت و بد جنسی توی یه یه استخونی نگهداری میشه اگه اگه کسی صندوقچر اونقدر خورد کنه تا مثل پوتر بشه شرارت هم از بین میره لاگا به پرسید خب اون صندوقچه اون کجاست؟ دختر جواب داد اون همیشه همراه پیرزنه مشکل ما همینه اون حتی موقع خواب هم اونو زیر سرش میذاره البته اینو هم بگم که خواب پیرزن خیلی سبکه اون موقع خواب یه چشمشو میبنده با چشم دیگش اطرافو نگهبانی میده و میپاده فکر کرد و گفت آه فهمیدم ما به گیاه خواباور احتیاج داریم بله درست یک گیاه خواباور و بعد گفت من من به جنگل میرم و این گیاه رو پیدا میکنم و برمیگردم لاگا برای پیدا کردن گیاه خواباور به جنگل رفت و با زحمت از زیر برفها گیاه گیاه خواباور را پیدا کرد بعد با شتاب به کلبه برگشت دختر خدمتکار گیاه خواباور رو زیر بالش پیرزن مخفی کرد به زودی صدایی به کلبه نزدیک شد ترق ترق ترق ترق, ترق. بله پیرزن برجنس بود که به کلبه برگشته بود لاگا فورا خودش و جایی پنون کرد پیرزن نفس عمیقی کشید و گفت بویق دریبه میاد چی شده که اینجا اومده دختر خدمتکار گفت این بوی موهایی که دیروز آوردی هیچکس اینجا قدم هم نزاشته من تمام مدت محاظب اوزا بودم پیرزن سری تکم داده گفت درسته کسی جرات نمیکنه به کل بگه من نزدیک بشه هره هم بوی موهای اون دختره دختری به اون جوانی میتونه سالهای زیادی عمر کنه حالا من به جای اون زندگی میکنم. اون خوابیده و فقط اگه موهاشو به سرش ببندن پیدار میشه. بعد خندیده گفت <تصفيق> ما چه کسی میتونه این کار رو برای اون انجام بده چه کسی میتونه موهای اونو از من پس بگیره اون که جز یه شکارچی کسی دیگه ای رو نداره و <تصفيق> بعد صدای خندش توی کلبه پیچید دختر خدمتکار به پیرزن گفت درسته کسی نمیتونه پاشو توی این کلبه بذاره بهتره بهتره کمی بخوابی باید خیلی خسته باشی اینطور نیست پیرزن سریع تکم داده گفت درسته درسته خیلی خستم میرم کم درست بکشم بله پیرزن به جنس درست کشید و به زودی به خواب فرو رفت کم کم خوابش سنگین شد و هر دو چشمشو بست دخترا یعنی لگا و دختر خدمتکار صندوقچه رو از زیر سرش بیرون آورد دخترا هاون سنگینی رو برداشتن و دور از کلبه شروع کردن به کوبیدن و خرد کردن صندوقچه مدت زیادی طول کشید تا صندوقچه خرد و پوت شد دخترا به همراه موهای بریده شده ی دیبو به کلبه لاگا لگا بریاشتند دیبو هنوز توی کلبه بی خوابیده بود و وقتی دخترها گیس و وانش رو به سرش پسند به آرومی چشاش باز کرد دخترها با هم توی کلبه موندن از رودخانه آمور ماهی می گرفتن، حیوانات جنگلی رو شکار می‌کردن و در کنار هم خیلی خوشبخت بودن اونا دیگه چیزی درباره پیرزن تاراخو تروقی نشنیدن، اما پیرزن همچنان خوابیده بود تا شاید دوباره یه سندو اوچه شرارت و بدجنسی پیدا بشه پیرزن میتونست با نیروی صندوقچه گیسوان دختران جوان رو ببره نیروشونو بگیره و به جای اونها زندگی کن. افثانی رو از مردمان آسیای میانه براتون نقل کردم به نام افثانی پیرزن تراختروغ برگرفت از کتاب افسانه های مردم دنیا با ترجمه از فتولاه دیدوان اگی نبار شاعر معروف روسی میگه افسانه ها و قصه های آمیانه معانی پنهان دارن به همین دلیل در قصه ها و افسانه ها مایه هایی برای اندیشیدن وجود داره درمی هزار افزان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالپور ویراستار سهیلا کریمی اقلا اجرا محران دوستی صدابردار مریم حق نظری یک كننده زهرا عبدالله زاده تا افسانهٔ دیگر بدرو